مزن وردلز نوک غمز تیرم که پیش چشم بیمارت بمیرم نساب حوست در حد کمال است زکاتم ده که مسکین و فقیرم چود طفلان تا که ی زاحت فریوی به سیب بوستان و شب و شیرم چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ذمیرم قده پر کن که من در دولت عیش جوان وقت جهانم گرچه پیرم قراری بستم با می فروشن که روز قم به جز ساغر نگیرم مبادا جز حساب مطرب و می اگر نقشی کشد کلک دبیرم در این قوغا که کس کس را نپرسد من از پیر مغان مننت پذیرم خوشاندم که از استقناق مستی فراغت باشد از شاه و وزیرم منان مرغم که هر شام و سهرگاه زبام عرش می آگد سفیرم چه حافظ گنج او در سینه دارم اگرچه مدعی بیند حقیرم